با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه 1357، نجات‌ها و قومیت‌های متنوع ایرانی از سلطه سرکوبگر رژیم سلطنتی پهلوی خارج شدند. دیری نپایید که سهم خواهی از انقلاب به بهانه حقوق قومیت‌ها با تهدید به جدای طلبی مرزهای ایران را با خطر تجزیه روبرو کرد و دولت تازه تأسیس انقلاب با بزرگترین مشکل خود روبرو گردید هشت روز بعد از پیروزی انقلاب جدای طلبان کرد پادگان نظامی مهاباد را تسخیر کرده و تمامی مهمات جنگی آن را به غارت بردند شش ماه بعد شهر کوچک پابه توسط جدای طلبان سرمست از پیروزی های متعدد به محاصره داخل زقوط این شهر یعنی بستان دروازه کردستان به روی دولت مرکزی تلق گردی دکتر چمران داخل یک اتاق پشت یک بیسیمه و یه مرد پشت سرش روی سندلی نشسته و با استرس زیاد پاهاش رو تکن میده مرکز مرکز چمران سلامو میشنریم مرکز چمران هستم مرکز مرکز این چمبرانی که صحبت میکنه کسی صدای منو میشنبه نویسنده و کارگردان ابراهیم حاتمیکیان بازیگران فریبورز عربنیا در نقش دکتر چمرا مریلازاری در نقش هانا بابک حمیدیان در نقش اسفر وسالی مهدی سلطانی سربستانی در نقش دکتر عنایتی امیر دلاوری در نقش سیروان سید راد در نقش تیمسار فلاحی. خسرو شهراز در نقش لطیفی و اسماعیل سلطانیان در نقش نزیف آهنگساز فردین خلعت‌بند اجازه نمی در سر نوشته ملت رو به نیجه پست شهر پاوه ادی از مردم جمع شدن و یه زن هم مشغول سپردانه داره از مجسمه شاه که شکسته و کنده شده فقط پوتینهاش به جا مونده و به جای اون پرچم ایران رو نصب کرده. یه مرد خریده به اسلحه با فروشنده ی درگیر میشه. بازار محلی پاوه گاری های سیار مشغول فروش مواد غذایی کتاب و حتی انواع اسلحه هستند مردم هم در حال خرید کرده هست نظیف با لباس کردی و موهای هنایی و یه سیبیل مشکی یه اسب رو به دست گرفته و بین جمعیت حرکت میکنه یه هلیکوپتر جنگی از فراز کوه‌ها وارد شهر پاقه میشه اعلامیه و عکس‌های حزب دموکرات کردستان زیر پای مردم و روی هوا پخ شده. دکتر چمران داخل هلیکوپتر نشسته و شیشه‌های اینکش رو پاک می‌کنه و بیرون رو نگاه می‌کنه. یه پرنده شاهین کنار هلیکوپتر پرواز می‌کنه و پایین. چیمسار فلاهی با لباس نظامی داخل هلیکوپتر نشسته و روی شونه یه دکتر چندان میزنه و به پایین اشاره میکنه دکتر شمران شهر رو نگاه میکنه داخل جادهی در میان کو ادده زیادی از مردم کرد با اسلحه حرکت میکنند و به سمت هلیکوپتر شلیک کنند تا گلوله به زیر هلیکوپتر اصابت میکنه و دو نفر از سرنشینان از ترس پاهاشون رو کمی بالا میارن دکتر شمران از شیشه هلیکوپتر بیرون رو نگاه میکنه که ناگهان یکی از گلوله ها با شیشه اصابت میکنه و شیشه ترک میکنه چمران سرش رو کمی عقب میکشه از بالای یه برژک نگهبانی رد میشه و همون موقع یه تیر به نگهبان برجک اصابت میکنه <تصفح> هلیکوپتر به نزدیکی یکی اندومزار میرد <تصفح> یه پسر بچه پرچم ایران رو در دست گرفته و به کوپتر نزدیک میشه دکتر شمران، تیمسار فلاحی و سرنشینان از هلیکوپتر بیرون میاد دکتر شمران و پسر بچه و تیمسار و دو نفر دیگه به سمت جنگل میدوند و دائم به سمتشون تیراندازی میشه دکتر شمران، تیمسار و بقیه داخل جنگل حرکت میکنند یه اولاغ تیر خورده و زخمی روی زنی نفتده <صفح> <صفح> نادر اسلحه میکشه که اولاغ رو خلاص کنه میری چکار می‌کنی معلومه؟ مردنیه داره می‌کشه. میکشه میخوام خلاصش کنه اگه تو خلقش کردی حق داری جانشم بگیریم تو خلقش کردی؟ دکتر گناه داره خب نجاتش بگیریم بشتن کار ما نیست نادر جم جاندارمری یه سرباز در رو برای دکتر چندان و برقیه باز میکنه همگی با عجله وارد حیات جاندارمری میشه تیرانداز تا ادامه داره سلامش سرباز ها به تیم سار که لباسش خی سرخ شده ادای احترام میکنه تیم سار به سمت شیر آب کنار حوز میره قربان آب شردت از آب حوز دستاش رو می شده ایشون دکتر چمران از چریک های لبنان که بای اسرائیل میجم قربان چریکه کود شرواری ندیده بودین سلام جناب سربان همه هم دکتر شمرانی. ها. دکتر شمران با دوربین شهر رو رزت میکنه نزد دکتر شمران تیمسار و بقیه از خوشه شهر عبور میکنه مردم کنار پنجره و روی بالکن خونه ها اومدن و اونها رو تماشا میکنن سلام نزی سلام حدیسا ها ها اینه کی اینه دنبال خود را انداختی اینه ملایکه ناجدی بسم الله ملایکه؟ ملایکه به تو چی کار دارن؟ ابلیس ای خوار خجالت کش. این هم خجاره و کشه چرچی آخران چه وقت ممانین پیره مرد خودش رو به سمت نزدیک پرتاب میکنه دکتر شمران بقیه به راهشون ادامه میدن پیسین اونجایه من، اوکو پیره با احتیاط بیا بودم همگی با عجله و احتیاط از میدون رد میشن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاوه چند تا از رزمنده ها پشت سنگر ها مشغول نگهبانی هستند. اسخر آقا اسخر آقا مهمون رسیدن اسخر با لباس سپاهی و ریش از ساختمون خارج میشه دکتر شمران و بردیه به ساختمون سپاه نزدیک میشن دره براشون گاه کن یوسف یوسف در رو باز میکنه دکتر شمرانو بقیه فارد میشه دکتر شمران با دیدن اصفر لبخند میزنه اصفر دکتر شمرانو در آغوش میکشه چرا زور زدین؟ این سرباز اسلام کهانه چیری که محرومان لبنان افتخار ایران الهی چه فاتح این بحران آقا مصطفی چمران کردن از رزمنده ها نزدیک تیمسار میاد و ادای احترام میکنه. خوش اومدین قربان. یه الان مامور شدم سر پاور رسال. اوه علی. سه روز پیش از یکی از اوتاخان چیکار ولی الان فقط جانی رو روبروی بیمارستان تپه پشت خانه پاسا که اگه اینا سقوط کنه وقتش سرازیرشن تو شهر تو چند وقت میتونی دفعون بیاری؟ اون از همه جداره براشون نیرو میاد ساعت به ساعت بیشتر میشن ولی من به برکت بزرگترین ارتش خوابر میانه نیروهام یکی یکی دارن آب میشن خیلی دفعون بیارم دو روز. اینجا دارم یه سوال از این سوال بپرسن بفرمین تنه آمدن فرمانده نیروی زمینی عرفش چه معنی داره؟ سوال خوبیه بهش بکن بخام بدونم خاک پاپه جز منطقی نگهبانی عرفش هست یا نیست؟ من اینجا پادگان ندارم پس به تبیری نگهبانی هم ندارم پس ما این سوال تو سننده اجبانه محابات سبقیست که پادگان داشتی نانان افتاده دسته همین مهاجمات تکلیف چیه؟ جوون. گفتنی زیاد دارم ولی اجالتم میبینه که من اومدم خوش اومدین خیلی صفا بردین ولی شما فقط یه هفته به کمرتونه نستر جان من و تیمسا آمدیم برای ارزیابی موزا کدوم ارزیابی شما به تایدیگ رسیدین همه چیز تموم شده سروران خدا را شکر که شما هنوز شغتبیتون به جای خودش باقیه. شما هم اگه تو ماه رمضون سربازاتون بدون آب و غذا می‌جنگیدن همین حالا پیدا می‌کردید. مقصر منم آقا. وقتی آقایون همون قطار رو مخفی میکردن، می‌کردن، باید فکر این روزا میکردن که ممکنه به کمکشون احتیاج داشته باشن. اون هم قطار رو جنایت کردن آواظن تو قضاوت عجله کردن. انقلاب همینه. تاریخ بخونید ببینید روزها و فرانسویا چه کردند. خب اینم نتیجهش من بی‌گونه آطاپاد اعدام رفتم. اسقر اورکتش رو در می. پشتش جای زخم شکنجه است. دیگه می‌بینید جای نیش پشه نیستیم سال. جای утوی شکنجه گرای ساواکه. انقلاب اسمش روشه یعنی زیر و رو شدن. این وسط اونایی رو ادام کردن که روی مردم فرمان آتش دادن. ارتش مارگزیستو شده دکتر. دیگه خاصه نیست به خدمت شو بخوره. آها شما بفرمایید می‌ترسید رژیم ساقط بشه؟ همین نامردا شما رو بکشن پای میز محاکمه. این حرف من نیست آقا. علی شما اینا با مردم یکی کردین. البته. به علی قسم تا پای جان مدافع انقلاب اجالتن ارتش منم سربازانی مثل من تو پادگانها کم نیستن فقط وقت و حوصله لازمه که ما هم دیگر را پیدا کنیم تیم از اتاق بیرون میره اسقر کتش را میپوشه تیمسا <تصفح> روی بالکن ایستاده و به شهر نگاه میکنه دکتر شمران به کنارش میاد چقدر شدی لوکرم شدی یاد روزای سختی افتادم که تو مواثره بودیم و این صدا به گوشمون میرسی او سلام های صدایی از اون از کلاسا ها بلند. او بیهونه را این ماشین ون نیسان وارد مقر سپاه میشه و یه مرد اسیر با چشم و دست بسته و یه نفر دیگه که زخمی شده را از ماشین پیاده میکنن یکی از بازمانده ها اسیر رو به سمت زیرزمینی که داخلش یه زندان کوچیک هست میبره. دکتر شامران با دیدن اسیر به دنبالشون میره و وارد زیر زمینی شد <تصفيق> مردی که اسیر شده رو داخل زندانی که سه نفر دیگه هم در اونجا هستن میدازه و در هفت کنه. و دست های ازیر ها رو بستن من اویستم او اویست نادری هرکه اینجاست خودش معرفی کنه تو کیستی؟ خاک و اوست دارت اویست تو نشرا گرفتن بیارزه دره؟ دره توی؟ بله خودمم تو چرا گرفت حدیختاری؟ تیر خورد ما. تام تامتاقانه کجا گرفتنه دویست؟ دو خیلی آشناس. آه آقا مدیرم اینجاست سلام آی لتیفی سلام تو جوان زرنگ بودی چرا اثیر شدی رفتم سری به خانه خوهرم بزنم شوهرم نامردش اثیرم کرد رفتی خانه یه پاسدار؟ اونم توی روزا؟ تو دی عجب خری هستی خواستم به خوهرم بگم خانهش دیگر در من نیست رفقم اگه برستن انجا خانه زندگیش به بعد میده ارو فقط چه خواهرم ایت تمام معاقل لطیفی از همه جا کامه حتی پشت قارستان پر آدمه یکی درست روز بیشتر میماندش نیستی کی اینجاست اینجا ویستاده دکتر شامران به نزدیکی زندان میاد آقای لطیفی من چمرانم نماینده دولت اجازه بدین چشماتو نگاوص کنم. چمران چشم بند لطیفی رو بر لطیفی داره ظاهر آشفته و ریش سفیدی داره. من اگه بخوام مارو از صحبت کنم شما کمکم میکنیم موازو باشین آقای مدیر این دیگه دارن نفس های آخرشو ها کشن. حتم دارم شما شاگردای زیادی تربیت کردین به احتمالن بعضیشون توی ملوه کشته شدن نمیخوایین بقیه رو نجات بدین شما بهتره فکر نجات خودتان باشین بدونم نبدونم نمره موزد چرا فکر میکنی من به مردمم خیانت میکنم من از شما خواستم پی که سوال بشین همین منتظرتون میمونم دکتر چمران دستش رو به شونه یه لطیفی میزنه لطیف خودش رو عقب میکشه چند نفر از رزمنده ها مشغول نماز خوندن هستن دکتر چمران کنارشون به اقامه ی نماز نیسته نزدیک افتاره صار برای خودشو دکتر شمران چای میریزه دکتر شمران مشغول دعا خوندنه یکی از رزمنده ها که ظاهر چاقی داره با یه ظرف که چند تا زمینی آپس داخلشه وارد میشه روزتون قبول باشه بفرانید شرمنده ما چند روزه همه یه قلم قضا رو داریم بحب آلیه. دسته شما درد میکنه میشه جان نمک صدایی از بیسین پخشوشه بشکه بشکه خوار خوش یه خوار خوش بهت بدم آقا اینا بچه خودمون نیستن ها همین این نامردان که رو ما شنود دارن بسر پس خوب بشکم بشکه از غره وسالی به دره خواست شد فرمانده تم کشته شد وسالی کشته شد عوضی عوضی زیادی خوردی عوضی خوابشو ببینین دستتون به اسخرقا برسه پس بریم بیمارستان جنازه شه تحمیل بگیریم بستی اینوز چم تو اتاقته؟ اینا همه جا آدم دارن اسخر کجا رفته؟ تپ پاسا بیسیم دارن باشون تماس بگیریم؟ پیشیم دارن ولی باتیش تموم شده تماس خط شب شده دکتر شمران و تیمسار به همراه نادر و دو نفر دیگه داخل یه فولکس بانت نشستن و در حال حرکتن مقابل بیمارستان چهل تخت خوابی پاوه چند تا از رزمنده های سپاه با چیدن وسایلی مثل تخت و یخجال مشغول درست کردن سنگرم من فرقی نداره یه شنی رو جابجا جنب سلام مک، سلام. شما یه چی هم کردی؟ گلی آری پولی. آیا یه پولی؟ این خیابون یه بوده یه گل افتاده دکتر شامبران خن میشه و یکی از گل ها رو بر می داره به سمت بیمارستان میبره. داخل بیمارستان مردم زخمی تمام بیمارستان رو پر کردن حتی داخل راهروهای بیمارستان هم پر شده از مردمی که زخمی هستند اگر هم غطارایی من می اینجا چه اتفاقی افتاده ما حال بود که مر بشن دکتر را میل زخمی ها به دنبال اصغر می گرده سیروان با ظاهری زخمی روی تخت نشسته و یه پرستار مشغول پانسمان کردن سرش آقا! آقا! از آقا! آقا! آقا! آقا! آقا! آقا! همسرشان ها با یه بچه توی بغلش کنار تختیش داده موینی که ساله منم خبا شکر خوربانه باید از خرچی کمش زخمی شده او داره خودش زخمش رو پام سمان می کنید سلام. سلام اینجا چی کار میکنی؟ اما آقا فرم مجروح شدیم نگران هر چیزی نیست خوبم از باید؟ آره خوبم حالا که اومدیم بعد ایست سیروان گوش بدین با بچه ها رو تر پی پاستار بوده سیروان داره آقای دکتر طریف کن در سواش بود خرمان خرو خانم برسی خروبی فشر زیاد شد گلوه مثل وارم میره اینو جحن نمی ست از رفقم شهید شده کینه سیروان جلازهشان همون جمانده کینه سیروان عبدالرحمن رمزان مویل دکتر رحمان سلمی؟ آره. اصلن حایم بیماری مجبورم. هران ممکنه بیان این سمت. از خارجم. اینه که چا یت تفانی. میدونم میدونم. دیگه چیه؟ باید از این بچه‌ها دفاع یا نه دکتر؟ این نیرو دارید. تمینه که دیدین زیر 20 زیر 20 صفر. به زخمی ها مسلاحی دادم سلان اسمی بارستن نظامی بشه آقا اونا درن سمت مردم شهر گله میندازن مردم مگر نظامی هست زربان این یه شهر آرام بخش زخمی نی درومچو هنه بیتیم ساریه و سمت شما گله میندازن یا نه چوزانو دیگ گله بنبسی گله میندازن صحبت همینه که این خانم میگن اگر از این بیمارستان حتی یه تیر شلیک بشه به اونا بهونه ای خوبی دادیم برای حمله کردن. آها. خیلی خوب. حالا که حرف این خانم مهمه، خانم شما این تکلیف ما چیه. بذارین من اینجا برم یا شاهر زخمی شما دفاع کنم. چه میدونم. من فیروانا میبرم خانه. خونه. اره، خانه. ما یا تخلیه بشه. چاره ای نیست. تخلیه بشه؟ کجا ببریم؟ ما چی ببریم؟ شما ما نظرشون موافق این دکتر؟ مجروحها اسر بشن بهتره یا کشته بشن؟ خوشلشم. من تو شهید دیگه نه دکتر. اون مقام که دست خداست از خدا. به منو تو چه مربود؟ ولی من زبون و اینا رو بهتر از شما ولیدم. اسقر اورکو تو اسلحه‌اش رو برمی داره که از اتاق خارج بشه. فکر لعنتی رو بکنی که از سد شما 20 سال نمیذارن. دیوا کنین نگذارن چون بعدش نبات شماست. پس کن. پتیس بدون وسیله این قرار توش زمانی که سرگوزان جلوی مردان بیزاف هفت کشته بودن تو اون چه قدرت نذاشتم تا یک گلوله شلیک بشه اگه شلیک می‌کردین کلا بعد اعدام می‌شدید موسه هاجنده انقلاب معلوم نبود ممکن بود به خاطر این تماریدن جونم از دست بدم آقای دکتر چندا اگه دست من باشه نافهای خونی روی زخمی‌ها رو جمع می‌کنم میبرم روی پش بوم آویزون می‌کنم که اونا بدونن بیمارستان منطقه بی طرفیه تیمسار مال حوی خونی رو به سمت اصغر پرتاب می‌کنه و از اتاق خارج میشه دکتر شمراهان به فکر فرو میده من یه پیشنهاد دار دارم. دادم به خون یه قدم از اینجا عقب نمیکشم چند تا نیرو میخوایم تا برگردم به همون جایی که آقا سیرون بوده ولی تا حالت هب به دستشان افتاده یعنی تو مسیر بیمارستان هیچ جایی نیست بشه جلوشون بایستاد نمیدنم بالله فقط یه پولی هست که شاید میشه برکنم جلوشون بگیریم خوبه 5 تا دا نیروی داوطلب می‌خویم. 5 تا دا داوطلب که بدونن عقد نشینی معنا نداره. اصغر از اتاق خارج میشه. دکتر شمران گولی که از روی زمین برداشته بود رو روی اسلحه‌ای کنار سیلوان میذاره و از اتاق خارج میشه. سیروان میخواد گل رو برداره ولی هانا اون رو از دستش میکشه و پرتاب میکنه سیروان سیروان سیروان به در خیره شده هانا با نگرانی اون نگاه میکنه گیرش تو زخمی نیام انا تو بابنی پدری ما خیلی صبر ما کرد خواهیم بچه به ما بده خانه بیتم ممرو خانه کرو تو وزیفه انجام جمدن انهای بلن که ظالمن میخوای که نرو منو؟ میخوای؟ اره دیلبرو لباسی جنانم پیجور کرد سی اگر الاندلو سرم پایینه هانا بچه رو توی بغل سیروان میذاره سیروان به بچهش نگاه میکنه هانا گریه میکنه باز ها دارن حرکت میکنند سیروان هم با سر باند پیچی شده همراهشون میرو و برای هانا دست کن میده هانا بچهش رو بغل گرفته و با گریه به سیروان نگاه میکنه دکتر شمران به هانا نگاه میکنه هانا روش رو از دکتر چمران برمی و میره یکی از رزمنده ها لطیفی رو ترک موتور سوار کرده و به چمران نزدگی میشه دکتر این آقا با شما کار واجبی داره سلام آقای لطیفی دو دو دو دو دو. سلام بالاخره یکی شنا راضی کردم با شما حرف بزنم خبر خیلی خوبیه خدا خیرت بده ببین آقا من آبرومه که رو گذاشتم گروه مغای مدیر راهروشون نگرد گذاشتن شاید داشت جون اینا کجا میرن جایی که مانع سقوط بیمارستان بشن مگرای عورت به فوا فقط همینن حالا شما بیمارستان نجات دادین ای مردم چش ولماقابلم خیلی دیرند داخل کوچه های پاوه مردم کنار کوچه روی بالکن و کنار پنجره ها نشستن دکتر شمران و همراهانش از کوچه ها اوبور می کنند و مردم به اونها نگاه می کنن اوجه توجه آعالی پاوه مردان ترسو امشو همه مدانتان امساو مردانگی تان تمام بودن امساو راخت زنانه قناغرتان امساو فقط زنی له فوا در امان است ای مردانی و شاهد اولادی قدایا و ها یا ناصر فرتک الف شما را جسد قابرا یا آزادی بلدی قوت با رضوی مردان اهل مان شما قدم به شهید عزیز باوقان استقبان شما هزیم فرزندان وستگیر ها استنشان خاهاد ما برای اتحاد آمد ونبرای انتقاد اختار اختار ایک سانی که لباس قربر خنداری و بزبان لباس خنی گوی ولیدی با ادنبی خای خاینی همشن شمرا خصابه فنسیل و مظلومانه تن زخر و قلداخی خائنه بارمانه ارفش اعزادی باش حسرهای از, از زنها و فور برکنی. مشغول یادگیری کار با اسلحت چمرا به اون نگاه میکنه. زنها جلوی خونیدی لطیفی جمع شدند. از یه چی اینجا خانه منه اوزن اینجا خانه منه امسر منه خونت رو رفته نه نگرانه امسر دی نه از چیه اتمن به ازنا بطن اگه همله شروع بشه تنها جایی که امنه خانه منه که بشه بله نیشه برم آقا بگه لطیفی صورتش رو میگوشون و حرکت میکنه و بقیه هم دنبالش میره بایی از وقتی که سرازی زیر شهر هزار غسطانیت داره و از یکی نیگه تاریخی از گرامی داره و فقط به فکر قارتن و از انتقام شخصی داره بعضی هم یک مسلمن با چه امیدی دل به این نادر دوستش روی لطیفی اسلحه میگشن آسلای من که دکتر قرار تمام ما قراره ور چمران اسلحه‌ی اونا رو پایین میاره. نشافتن چمران. یه نامردی آقای مدیر من از همون اولش به این بابو شاید داشتن بود آقایان آقا شما که نگم هدید این کارا به خاطر انمیت هم. من سرطیب فلایی هستم میخواستم <تصفح> <تصفح> این برا خلق درم میگم فرطایی تن بخند ازمین اگر نمیخواید مزاکر کنید تیمزار از دهش ده رو به چمران میده ما به حرفای آقای مدیر رتمینان میکنیم دکتر شامران اسلحه رو به لطیفی میده اگه بلایی سرمون بیاد از چنگی اسفر نمیتونی در بری او میدونه با هم اومده اینجا. وقتی که امدادم ندارم لطیفی اسلحه رو روی زمین میذاره متاسفم دکتر دکتر شمران و همراهانش گوشهی نیستند آبرهكم ها اويننده شما خالیه بر دو نفر 3 با افارمار بو کردی و اسلحه از صخره ها پایین میاد هوشیار باش هر کس جامی خواست جامی اوری تک خان خوردن سوراخ سوراخشان میکنی ای لی دوستا من افتخار نصیبی گروه من بشه وقت که ما ام قش مفتنه پیرو دوها ها چیکا داخل کرده خبریک ها شنیدم عسیر تن بوده همه اینجا میمانند مرد کورد به دکتر چمبان اشاره میکنه فقط این با من میاد دکتر سمران دنبال اون حرکت میکنه دکتر شمران به همراه لطیفی و مرد کرد به روی غبرستونی بالایی یه تپه می رسن. مرد کرد دست به اسلحش می بره. لطیفی می مانعش بشه که مرد کرد اون رو پرت می‌کنه. کنه چیه که بیاخ وظیفه من جامدم مرد کرد یه منبر شلیک می کنه. همه نور قرمز روشن می کنه پای نطفه جمعیت زیادی از مردم حضور دارد قدم رنجه فرمودین دکتر انایتی با لباس کردی موهای جنگندمی، اینک یک کلت به کمر و یه چراغ قوه توی دستش به سمت دکتر چمران میاد این لشکرکشی کشی برای مردم شهره؟ نمیدانم فقط خواهش میکنم توی مذاکرات به مردم بی پناه شهر فکر کنید نه خواستای حکومتی مرکزی خواهش میکنم دنیا با این وسطش خیلی کوچیکه. کرد درست میبینم شما دکتر انایتی هستی بله پیر مرد تو الان داری با دکتر انایتی حرف میزن مذاکره محرمانه است. اجازه عدی تنیابوین با ای دکتر انایتی من که قریبه نیم نیایش سازمان ملل نیویورک. چیزی یادتن مانده؟ بله تحسن دانشجوها به خاطر سفر شاه یک کتک مفصل از پلیس آره. نره ولی به اندازه تو مشهور نشدم. شبکه های تلویزیونی تو را بیشتر از من قهرمان کرده پلیس میکشیدت تو چسبیده بودی به زمین اون موقع ها چپ بودی؟ هنوزم آرشیستی؟ هنوزم هنوزم اگر امیدی برای رهای خلق باشم بی چپ ها هستن که پرچم دارن تو چی؟ هنوزم سمجی و کلشق نمیدونم شاید از حقت بود از اون شرکت تحقیقاتی اخراجت کنم اسمش چی بود؟ به لب اگر اخراج نمی شدم که الان اینجا نبودم اینجا هم اگر شقی کنی اخراج میشیم اونجا من یه غریبه بودم به اما اینجا سرزمین منه یه غریبه بودی پچه را زن گرفتی الان کجا با خود داوردیش ایران پس حداقل یه درد مشترک داری منم با دو تا بچه مجبور شدم تو بچه داری ما برای مزاکری مجاییم داری بله یه دختر تا پسر؟ یه دختر تا پسر هنوزم بهشان فکر میکنی برای چیزی که آزادی خواه بابستگی یعنی مرگ خانواده بابستگی میاره آدم مجبور مذاکره میکنه ته مذاکرم که یعنی تسلیم بله اما مذاکره برای مردم نه برای بحثهای خصوصی و فلسفی ولی برای من مهمه بدانم مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه شاید روزی جایزه نوبل می گرفت الان اومده پاور رو در روی ماه ایستاده چرا من اومدم تا به خاطر این مردم با هم مذاکره کنیم مردم روزهای انگلا کجا بودی این بازجوییه مگر ایران وطنت نبود چرا دوشا دوش مردمت نبودی جایی که من بودم دکتر، اهمیتش هیچ کمتر از ایران نبود چه اهمیتی بیشتر از ایران؟ رهبر مقاومت لبنان رو سرهنگ اضافی زیده بود من باید کنار یارش میموندم کدام رهبر؟ امام موسا سدر اونم ایرانیه اونم که ایران نبود به نظر من در کشم خیلی سخته سخت نیست دکتر. تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی داری مغلطه میکنی دکتر لبنان حکومت طایفه است. در حالی که ایران تا بوده ایران بوده همه جور طایفه و قبیله در قلم روش با سور زندگی کردند گذشته را رها کن مصطفی از حال حرف بزن الان عمر این انقلاب عمر یک نوزاد شش ماه هست چه بهتر چون تا بالغ نشده وقت داری اما این سهم خواهی شما به قیمت پاره پاره شدن ایرانه سالها با همین منطق سرکوبمان کرده پار پاره شدن وطن کو وطن کدام وطن سهم نژاد من از این کشور فقط نگهبانی از مرزهاش بوده این ادالته ایرانی ترین نجاد ایران نجاده کرده نه کرد از ایران جدا میشه نه ایران از کرد این جمله برای سخنرانی خیلی تشنگه ولی دردی از ملت ما دوانه میکنه مصطفی این ملت که میگی از دولتش درخواست کمک کرده این یه مشکل داخلیه ربطی به غریبه نداره برای مردم پاوه دولت غریبه نیست پس چرا کمکشان نمیکنن آمدن چمران و تیم سرفلاحی تشریفات جنگیه نه کمک به مردم پاوه ما برای جنگ نیامدیم چون قدرتشو نداری اشتباه میکنی قدرتش هست، انگیزه و میلش نیست انگیزش نیست چون سربازانتون از ملت هند. نه از قدرت درستانی، ما هنوز نمردیم که شما از تهران بیاید برای ما تعین تکلیف کنیم رجزخانی بسه بسیار خوب من آماده تا درخواست های شما رو بشنوم. شنیدنی نیست تنها کاری که از شما برمیاد اینه که پاسداران تا جمع کنین از اینجا برین. پیشنهاد خوبی نیست اما بهش فکر میکنیم همین الان هم چرکت کنین دیره چه تزمینی هست اگر ما بریم شما از حمله به شهر مصرف بشین تزمین یه نگاه به دور برات به ناز محل مذاکره قبرستانه این برات مفهومی داره بله شهادت همیشه برای من خیلی معنی و مفهوم داشته برای تو چی؟ داره مفهومش اینه که به همسنگر سابقه هم توصیه کنم تا هوا روشن نشده ای شهر رو ترک کنید یه تضمین عملی و جدی میخوام تا پاسدار قانه بشن کیش و مات. این تنها تلگرافیه که میتونی به همه جا مخابره کنی. بوی اسرائیل به مجامم میاد از گروشنگی مصطفیه دکتر اینایتی چنبان رو بغل میکنه و در گوشش میگه دام میکنم زنده به دستم بیفتی مصطفا سوالهایی بی جواب زیاد دارم من و تو بهشت آمریکا رو کردیم آمدیم اونجا که چی؟ بچه چه من من که درم خیلی هواشونه کرده <تصفيق> انایتی میره و دکتر چمران به فکر فرو میره و خاطراتش کنار خانوادش در لبنان براش زنده میشه دکتر شمران داخل یه فولکس واگن نارنجی نشسته و یه دوربین قدیمی توی دستش و داخل دوربین رو نگاه میکنه همسر و فرزندان چمران کنار ساحل مشغول تفریح و بازی هستند و دکتر از اونا فیلم می گیره دکتر برای بچه ها بستنی غیفی بی و بهشون می ده روی شنهای ساحل نوشته شده کام ویت with وی We don't یو اس USA ویت اوت یو. دختر دکتر چمران کنار نوشته ها ایستاده دکتر چمران داخل ماشین نشسته و همسرش کنار ماشینه و داره باهاش صحبت میکنه همسر چمران کنار ساحل با بچه ها بازی میکنه و همه به سمت دوربین دست کن میدن داخل ماشین و در حال برگشت از ساحل همسر چمران اشک های صورتش رو پاک میکنه ماشین چمران خانواده اش به چهل کیلومتری بیروت میرسه فیلم تموم میشه دکتر شمران با بغز دوربین رو از جلوی چشمش پایین میاره. حاوه شب احیا داخل مسجد. دکتر شمران قرآن رو روی سرش گذاشته و گریه میکنه. تیم سرفلاهی و ادهی دیگری از مردم شهر هم مشغول خوندن قرآن هستن. صبح داخل مقرر سپاه. دکتر شمران توی یکی از اتاقها نشسته و چشماش روی هم گذاشته که ناگهان با صدای انفجار شیشه پشت سرش خورد میشه. دکتر شمران روی بالکن کنار تیم سرفلاحی میاد. دوران تردید دیگه تموم شد دکتر <تصفيق> تیم سار به هواپیما های جنگی در حال پرواز نگاه می کنه هواپیما ها بر فراز شهر پرواز می و مردم از خوشحالی براشون دست کن میدن. به نظر من این پرواز سنتو پیام داره اولین اینکه ارتش تردید کنار گذاشن و وارد مگنم شده میده فکر تصمیم شهر رو نکنه زبومی که مواظه معاجبار شناسایی میکنه این یعنی پایان ب قایله تیم و دکتر ناگهان نگاهشون به سمت یکی از هواپیما ها که دود غلیزی ازش خارج میشه میره امکان نکنه هواپیما به سرعت به سمت یکی از کوه ها میره و پشت کوه منفجر میشه یا <تصفح> خدا ما بایه ارتش طرفیم از کجا پشتی میشن؟ <تصفح> این سبوت مردم ناامیدتر نامیدتر میکنه تیم سارمون هم تر؟ یه آمبولانس وارد مقرر سپاه میشه رانندگی آمبولانس با دست زخمی و توفنگ به سمت چمران مرد چی بیمارستان از دست. از دسته یعنی سبوت کرد؟ هره اسخر کجاست؟ جلوه اونا بایستدن تا نریزن تو شهر از طرقا پیغام داد که یه فکی با حاله این مجروعا بکنید همشون سروزی شدن دارن میان این سمتی اون مجوار را شکال کنیم نمیدونم از چه آج چمرا میگن برزی کیا بریم پای بیسیم باید هلیکوپتر بخواییم دیدین چه افچه ها زدن هلیکوپتر لازمه و این واسه پایید دکتر التماسشون کنین تیمسار بگین نیروهای مهاجمی دارن بغرض شهر میشن بگن این یعنی یه فشار بزرگ یعنی فاجعه بهشون بگین هم هلیکوپتر لازمه هم نیروهای کمکی یه وانته آبی که چندتا تا سرنشین و یه زخمی سوار شند به سرعت از خیابون رد میشن درگیری بین مهاجمین و نیروهای سپاه تو خیابونا شدت گرفته اسرار مشغول تیغه و مقابله با مهاجمی. یا خدا نادر و دکتر شمران با موتور به محل درگیری نزدیک میشن هن نفر از زخمی های بیمارستان <متنجان> داخل جوب افتادن <متنجان> یه پرستار زن <متنجان> و دو نفر دیگه که زخمی شدن دولا دولا از کنار یه تپه خاکی رد میشن و به سمتشون تیر اندازی میشه برایش هیشکی... سمت چمران میاد. داره دکتر چمران با یه توفانگی به سمت بیمارستان میره که از خاری اونو میبید. نیروهای مهاجه مشغول تخلیه کردن بیمارستان هستند. تمران یکی از دیوارها بحناه میگیره. برو برو برو! زوکر زوکر! برو برو! برو برو زوکر برو! زوکر برو زوکر برو برو! زوکر برو, زوکر برو, برو, زوکر برو, برو شامران به سمت در برودی بیمارستان میره داخل بیمارستان همه چیز آشفته و به هم ریخته است جای دست های خونی روی دیواره برخهای بیمارستان اتصالی کرده ادهه زیادی داخل راهروها کشته شدن خانا با یه بچه توی بغلش بالای سر یه جوون که در حال جون دادن نشسته شما اینجا چیکار میکنیم؟ بلن خانم باید از اینجا بلین زیروان هنوز نیامده من شما اینجا باشین سیروان میاد ببینی خانم باید زودتر بریم جونتون در خطره و چی میشه؟ نگه انو نباشین یه <تصفيق> مهاجم یهو برده راه رو میشه چمرو نسله رو به سمتش میگیره مردم مهاجم این پا اون پا میکنه و دستش رو آروم بالا میاره و فرار میکنه بلی چمران تیراندازی نمی مرد مردم حاجه از پشت دیوار رسلهش رو بیرون میاره و شلیف می چمران شروع به تیراندازی می و به سمت اون میره مرد حاجه ام رو میندازه و فرار میکنه. حالا حانا با بچهش روی زمین افتاده چمران به سمت حانا میره حانا حانا علت خوبه خانم و نادر وارد بیمارستان میشد دکتر من دلم خوشش شما پای پاستورانی اومدین اینجا چی شده اسقر؟ برای برا تعویض بده اسقر بر. پرسیدم چی شد اونا که تو سر افتن اونا که نه تو سن جنازه‌شون هنوزم از یک نفری برویم. از یک نفری برویم. از یک جلوی پناهگاه روی کو پشت سنگر تیم سارفلاهی با یه دوربین در حال رسد کردن اطرافه دکتر شمران و نادر به وسیله گچ مشغول علامت گذاری جایگاه نشستن هلیکوپتر هستند. از سمت دیگه ای از کوه یکی از مهاجمین در حال رسد کردن پناهگاهه به سمت چمران تیراندازی اندازی میشه چمران به سمت سنگر میره و دوربین رو از تیم می میگیره دکتر درستی رو اون یار تکیر انداز بساشت چمران با دوربین محل اختفای تکیر انداز رو نگاه میکنه تس این تا اشتاقتین که میرستن تیم کن گوششتون کرد اگران حرکت کرده باشن تا یه رو نمیم باید اینجا باشه شبان جندیدی کن نباید بذاری اینجور دقیق بسنم راگه باشم اینا هانا با چند تا از زخمی ها از دروازه به سمت پناهگاه میاد شعبانی اسکو بالا میره و هانا وارد پناهگاه میشه زخمی های زیادی داخل اتاق پناهگاه هستن و هانا بین اونا دنبال سیروان میگرده آنا دونه بدونه به, به زخمی میخوان نگاه میکنه ولی سیروان رو پیدا نمیکنه دکتر شامران وارد پناهگاه شد دکتر همطور که فرمودین اینا رو بر اساس شدت جراحت چهار قسمتشو کردن خدا خیرتون بده خسته نباشید ولی سختی یکار وقتی که اله گوتر برسه وقت معلوم نیست چه نفر نوبت نوبت کنه حانا ناامید روی زمین میشینه چمران با شنیدن صدای هلیکوپتر از پناهگاه خارج میشه نامرده چه آتیشی گرم براش میریزم بچه ها یوانی روز که انگلیزه پیدا کنن تماشایی میشن دکتور من مشتصمشون علی بعد شعبانی. شعبانی با یه تیربار بالای کوه مستقر شده شعبانی با دستور چمران تیراندازی میکنه হেলিকপ্টر به سمت موازع مهاجمین تیراندازی میکنه شعبانی هم همچنان مشغول تیراندازی <تصفيق> خوش دید خوش بچه ها خوب زدین به افری هلی‌کوپتر کوبرا به لخرفولت میاد. دکتر شبران و تیمسار به سمت هیلیکوپتر میاد. بیگوالا، ما نه نه نه. می‌دونم بخاطرش نباشه. فرمانده با یاراشه که معنی داره. بودن فرمانده نیروی زمینی هم جایزی نیست. به خدا قسم اگر قم چه موشه برسه یک دست هم بیکار نمی‌شین. فعلا تا چیزی که اولویت داره. اول اینکه نذری ای خط هوایی بسته بشه. دومی که نیروی تازه نفس این بچه داخل هلیکوپتر مواد غذایی و مهماته چند وارد بارده هلیکوپتر میشه و مواد غذایی و جعبه مهمات رو به نیروها میده تا تخلیه کنن چی با عصبانیت به سمت هلی میاد و جوای مهمات رو از دست یکی از میلوها میگیره و اونو روی زمین پرت میکنه. قربان ما به ما پر از مردم هم مگردوم به سمت دروازه هجوم آوردند که به سمت هلیکوپتر بیا و شعبانی یه مرد دیگه به سمت مردم میره تیم فشنگ ها رو از روی زمین جمع میکنه زخمی ها رو برگی سبار شدن به سمت هلیکوپتر میارن یه بچه و یه زن باردار هم میون زخمی ها هستن <تصفيق> دکتر شمران به سمت مردم کنار دروازه میاد. اجازه بدهید بالاتر نمی آوید. چی؟ این خطابی از آقای شمران. شما که اون جایی ما هست. اگه شما ببینید این حکومت ما را فراموش میکنه. چیز شما گفتم من میخوام شما. چیکار نمی کنید؟ آقای شمران افتخار نمینی که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد میگیره مردم مظلومه پاور و پنها نزاشتن چمران یکی از مردم رو در آغوش میکشه هلیکوپتر بلند میشه و چمران بر میگرده و تیمسا رو میبینه که از داخل هلیکوپتر براش دست بکنیده داخل پنیپتر یکی از نیبه ها بین زخمی ها و مردم غذا پخش میکنه بسیم خدا شما دکتر چمران بالای سر یکی از مجموع ها نشسته پانا از جاش بلند میشه و به سمت در کنار چمران که میرسه میزه برای هر هرچی از برای فقط پانا میخواد از در بیرون بره ولی چشمش به سیروان که زخمی روی دوشه یکی از رزمنده هاست و وارد پناهگاه میشه میفته به داره داره تو م ما سعی می‌کنیم. می‌بینی بیمارستان قتل عام کردن. وی هم باز چی می‌کنه؟ می‌بینی؟ تیکا تیکن. چی به سر دو کمی خوردیم. اسیر سیر شدو یکی رفیخ در آمد فراری مدد آقای چمران آقای چمران هلیکوپتر برمیاد آقای سیروان مرد بزرگی پرسته بزارگ ها بزرگی همیخد نوزه هرکم خورو برنابونه ندیم برسته هرکم ایشان لاوشو نوی خاص موی میخوای بذنی برکال کمو ایسی؟ آره. ایسی؟ آره. ایسی؟ ایسی؟ یا من زنن مانون؟ یا اویسی؟ بس اردو انا زنن مخانم؟ اینا؟ رو بمدنی اصلحش کشان؟ مگر باقت اویسی؟ ایلان اویسی دانه؟ خیال در احبه جای وکس دکتر شمران از جاش بلند میشه و هانا بچهش رو به دست یه پیر زن زخمی میده. هلیکوپتر دو هم فرود میاد. خلوان در هلیکوپتر رو باز میکنه. داخل هیلیکوپتر رو نگاه می و می بینه که هیچ کس و هیچ چیزی داخلش نیست زخمی ها به سمت هلیکوپتر میان و یه اکاز توی جمعیت مشغول عکس گرفتنه روه روه سیروان هم به همراه زخمی سوار هلیکوپتر میشه حالا با گریه برای سیروان دست کن میده هلیکوپتر بلند میشه و توسط این مهاجم در حال رسد شدنه به سمت هلیکوپتر تیراندازی میشه یه تیر به بازوی خلبان و یه تیر به سر کمک خلبان اصابت میکنه هلیکوپتر تعادلش رو از دست میده <تصفيق> کمک خلبان می میره خلبان با دست زخمی سعی میکنه تعدال هیلیکوپتر رو حفظ کنه و مانه از برخورد پرهای هیلیکوپتر با کوه بشه هیلیکوپتر می چرخه و برسر برخورد با کوه دومش از جا کنده میشه. هانا با دیدن این سحنه روی زانوهاش میفته هلیکوپتر با سرعت دور خودش میچرخ و به سمت زمین میاد سیروان و پرستار از هلیکوپتر به بیرون پرتاب میشن هانا مات و مبهوت به سیروان نگاه میکنه پر های هلیکوپتر سر یکی از مردم رو قع میکنه هلیکوپتر با شخش زیاد کنار دروازه به زمین میخوره و متوقف میشه دکتر شمران و مردم به سمت هلیکوپتر می دوان. روی سر جسد سیروان میاد و زانو میزنم اون آش میزه Oh, <laughs> <laughs> <laughs> خیابون های شهر دکتر شمران یک گاری رو که روی اون چند تا از زخمی ها رو انداختن به سختی میکشه و مردم هم در کنار گاری حرکت میکنن یک پیر زن و دختر کرد با گریه به سمت چمران میاد زخمی بود و ولی زنده بود غرقه خون بود ولی حرف میزن درد میکشید ولی می... میخوندی از من گرفتی من من من تو پیرزن با لباس خونی پسرش چمران رو کتک میزنه چمران مبهوت به پیرزن نگاه میکنه یکی از نیروها مانه پیرزن میشه پیرزن لباس رو به سمت چمران پرت میکنه چمران لباس خونی رو توی دستش میگیره و به دیوار سنگر تکیه میده مردم از پشت سرش وارد پناهگاه میشن من از غر پشتگی فولکسوانت با یه تیربار ایستاده و جلوی مغر میاد و تیربار رو آماده شلیک میکنه چند تا دیگه از نیروها هم آماده شلیک هستند نیروهای سپاه وارد خیابون میشند مهاجمین هم پشت سرشون می آن. از در ماشینی رو که تیربار مهاجمین روشه رو و با تیر میزنه و ماشین آتیش می ده. از غر با تمام نیروهاش وارد مقر سپاه میشه حال از میون جمعیت به سمت در خروجی می. ده. یکی از نیروهای کرد به سمت در میره و در رو برای نیروهای سپاه باز میکنه کنه نوره اینجا؟ چی شما گفته بیاین اینجا. اینجا واسه خودمون جا نیست. ولش می‌بریم میرون تا دیگه نشده. ده. پدر جان با شما ولش می‌بریم میرون. اسخرا جان راحتشون بذار. این عزیزان من آوردم اینجا. چرا اینجا دکتر. از کجا؟ جای مونده ببریمشون؟ ما خودمون برگشتی میشه یه نفس تازه کنیم بریم. بریم کجا بریم؟ معلومه تو پوچوها اونجا بجنگیم. اونجا واسه من امن تره. نیست. هیچ جا به غیر از اینجا امن نیست. هر جا بشی میزنه بچه‌ نواد باشه. اینا دست باگیرن. بفرمایید. در رو ببر برگردین تو خونه بیرونی که جای نیست مسئول حفظ جون شما مایین. برگردین لطفا. ازخررج مسئولیت حفظ جون این عزیزان با ماست همه اینجا میمونن پس ماچی دکتر کی به فکر ماست؟ اگه قرار دولت برفای نمایندش که شما باشی گوش نده پس ما کاسه دختر از آش شدیم چرا این جنگ یه محلیه ما بی خود خودمون انداختیم وسطش از قرقا بهتر نیست برگردیم شهرامون یاخ وا چی میشه یه ابراهام بگو خسته شدم تا سیدم نمیتونم کجا این دعوه محلیه محلی نیست پکو کمک یعنی این کشور سی میلیونی همین چهارده سرباز نفس در رو داره و نه چیه ما هم مثل شما از این انقلاب دفاع کردیم اینا واسه ما کمر اینجا تنیه بذارین؟ آقا انصافم خوب چیزیه ما این همه شهید و لاتفار دادیم. بستتون نیست؟ والله ما مرده اینجا تنیه بس. مگر بیمارستانو ندیدید؟ اونا رحم و او کی گفت اینجا بمانینم؟ شما این بیایم مهمان ما. ما جوری زندگی ما نوال کنیم بیایم همراه شما؟ و زار زندگی بزنن بچه من اینجا چی میشه؟ تازه میشیم مثل ما. مگه ما ول اومدیم اینجا. به خیارت فتح. ببینین روحای سپاه و کرد درگیر ایجاد میشه.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 دکتر شمران هم دستهاش رو بالا میبره و میونه اونها قرار میگیره. گوش کنین گوش کنین صدای از آن رو هیچ کدوم نشدیم با شنیدن صدای اذان همه نیروها اسلحه هاشون رو پایین میارن چمران در حال نماز خونده <تصفح> سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اون از غرب داخل اتاق میاد و اصل حش رو کنار سجاده چمران میذاره و میره. شب شده. نیروها مشغول سنگر سازی و تقسیم مهمات هستن. وظیفه می‌گوشه. علی. به سمت خانه میاد یه ی بهش میده. چه خوارم؟ چه جنجا نمید؟ یاگه چی جنگ کنی؟ گنگوچه چی؟ توالا تیر انداختی؟ بگیرش شما چی بلدی؟ و از این خانم یاد بگیر بیا بابا بیا بگیر برو اونزا بیزن امییک ها؟ امییکه با پشنگیش پشنگیش اینجا سوی بدارم پشنگی امییکو بده بذنارجه يا که به بابا پیچی به میدی؟ برای دفاع این چه ما چه کاری؟ وقتی که جنازه ما شدن بعدش شماست که دفاع کنید. من دوست ندارم کسی رو اسلحه رو به پس میده و میره. یکی دیگه از زنها هم اسلحهش رو پس میده. یادتون نره ننگ بر جنازه پاسداری که تو خشاب اصله هشت شنگ مونده باشه بریش داره پستتون. نروهای مهاجم چند تا لاستیک رو آتیش زدن و به سمت مقرر سپاه فرستدن نکنید. چهار تا لاستیک سخته این همه گله نمیخواد که بگیروز داقه مهمات نشستین اینجوری گله رو کنین چطوره؟ تونه؟ تو دیدی من هم بارو کردم اینجوری که شما آهل کردین این نامردا برسن باید با چوم و چومک باشون بجنگین من میدونم که همتون خسته این ولی به یاری خدا باید تا روشنایی صبح دوون بیاری خواهش میکنم خواهش میکنم تا هدف و تشخیص ندادین دست به ماشه نورید اونه که شنیدن ملند بگن الله و اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دیدین دارن کور میزنن حالا تو سنگرتون آروم مگیرین تا صبح خیلی کار داریم کمه کم کنین. دهدمون برسید. حالا برگر تو زیر زمین بز ما کارمون رو. ریخته نشده. کم کم کن. خانم برگر تو زیر زمین اجازه‌ده ما کارمونو رو بکن. حالا دیگه هم نمی‌گیرن. آقا انتقام چی می‌گیرن؟ اس هرچند توبمون پیش بچات من یکی از اهالی که اسقر بهش تفنگ داده بود به سمت او سرای مهاجم تیراندازی میکنه. چمران به سمتش میره و تفنگ رو ازش می‌گیره. پای یکی از اسرا زخمی شده. چقدر؟ این داد من بدستیو با این آدم هم نشون. خب که اینا زخمی هن. گلخون خوردن گیرش. داخل زندان میره تا به زخمی آقای. آنا. هستی. هستی. مرد زخمی مانع بسته شدن پاش توسط خانم میشه هیچ نیه سیران اردنیشیگه ها خلاس خوبه من خوبه تو من هرم هرم بیم رو راحت بده خجالت داره بله خجالت میکشم. ناسلامتی ما مسلمانیم آخه اینا زندانی ما اسیر هم به جایی که کمک بکنین هی مشکل می یه یک بار برای همیشه بهتون میگم. گرد اهدی حق تعرض به این زندانی ها رو نداره آخر جا فهدی این نره آوردیم جلو چشم ما اینا قبل از اینکه شما بیان اینجا بودن مادر جان حقشانه اگر آواز نمیخوانن کسای با کاری نداشت اینا جوانن شما چرا نمیفهمید پیر جوان نداره مادر من اینا همونهایان که کامیون من بدبکت و به آتیش کشیدن و نوی تو رو به تیر بستن اینا رزم دروی زن کنین تا بره رفقهشم بشن در سبرت ساکت اینا باید محاکمه بشن دادگاه تشخیص میده باشون چی کار کنه <تصفيق> دادگاه شما هنوز خوابید این ما اینکش مان میتونیم دستت هات کنه خاله نمایش فقط تا چند ساعتی که جامان با هم میشه ما رو محکوم میکنه وقت مخته رفیق هم رسیدن پوسته دار عوضی که بابا مهرمان باشین داری از انتخاب خود میذارم وقتش وقتش شو ورسو بیش اینجا تام چیم بالا برادر جان چیم بالا چمران با راحتی از زندان بیرون نیاد شرمنده که ویت با این حالت میکشی کم بدیم. بشین به نینجا اینو میگیرین دستتون هر کس از اینها پاس به زندانی ها کنه شما حق تیر و مفهوم شد؟ یاده تخت توجه پیروزی در یک قدمه ماست اکنون به دیوار قلعه مزدورن ولی اراده ملکی کرد تصمیم به خوریزی ندارن به چمران وی با دولت و عسكر و وصاری فرماندهی مستوران اعلام می کنیم شکست شما قطعی و سفرهای بلاکردن کردن و زدگان کفای قور یک عمل بی شرمانه بوده و هیچ سوال. چمبو روی کنار اسقر میره اگر چبران مدعی مذاکره و نجات بی گناهان است دلیل حازه تصمیم تاریخی گرفته و خود را تخلیم کنند. و در صورت مقاومت اگر ساکنان بریم قرده قلره آنها را دستگیر و تحویل مادهند بخشوده شده و فقط از سرزمین اخراج خواهند شد. از همکنون سید فرصت تصمیم گیری دارید. زندبا کردستان و آزاد. خب آقای لطف کردن نیم ساعت همون دادن چیکار کنیم دکتر خب فکر کنیم اسخجان که تسلیم بشین یا نشین کاش که میشد اما رو عرفاشو نمیشه حساب کرد دکتر یه چیزی ته دلم مونده باید بگم میشه بگم اسخجان از, از وقتی رسیدین شما رو بیشتر چمران بازرگان دیدم تا چمران خمینی خمینه هم سر روز خدا از خرچم اما هم جنگیدن هم. همیشه آخرین راه هست لابود من یه چیز چمران رو در آغوش می په. دکتر من نمی فهمم ات نمی فهمم. می دونم. شجای آقلی بزرگی به من نمیفهممت کاش نمیمدیم توی این بوم بست کاش بین مردم بودیم کاش تو کوچه پس کوچه ها کاش شهید میشدیم تا مردم شاهد باشن سرباز خمینی مرد شهادت نتسلیم خوش بقاد خمینی که سربازهی مثل تو داره بلی از جان. وگر تو کچه می جنگیدیم بهشون بمانه می دادیم تا مردم رو خطله کنن من کاری به بقیه ندارم ولی با سرخ ها یادشونه یه هفته پیش یه ستون شست نفری دستبان سرخ اومد توی شهر یادتونه مردم چی جوری بایدن پیش باز؟ الان چند نفرشون مونده؟ باز یادتون به نظم زمین پارچه سرخی که دوره گردنمونه منوش چیه؟ دستبال سرخو ما به خونه شهدا هم قسم شدیم که راهشون رو میریم پس چرا ساکتین الان وقتشه جواب اونایی رو چه ذلت ما رو میخوان ببینن بدیم از سر وسط میره و وارد خیابون میشه و تیراندازی میکنه اینه جواب دستمان سرخو خلبان به سختی از ناحیه گردن زخمی شده و پرستار بالای سرش نشسته چمران بالایی سر خلبان میاد و پرستار از جاش بلند میشه نه بابا خلبان حلقه ازدواشش رو توی دست چمران میزره فقط ویس و دقیقه. فقط و دقیقه آقای کمران ایسا که ضربال عجل دادن خب کاری بکنید باید نشهید اینجا آب دستمان سفر محبت بین محبت نه کنه عقلتون بدین دستی اونا حالا که مولاد دادن بریم و باشم صحبت کنی بهشان بگید که بزن و بچه بیپنه اینجا راست میگه بچه ها تجنن آوینینه فکری بکنید آقای جمره نیشه با من بیایی؟ تو خواه فقط نه <تصفح> یکی از احالی چمران رو به سمت یه زیرزمین میبره یه دقیقه حسول کنی؟ خدمت ازم میدم چه هر یه سری از وضاییلی که داخل زیرزمین هست رو کنار میزن و یه تونل تاریک رو به چمران نشون میده این معدومه ترنه اینم راهه آب با یکم زحمت میثانی با آب حرکتش چمبل لباس کردی میپوشه و همراه مرد وارد تونل میشه اینجا راست کجا میشن من یه ای وقت اونجا کارگری کرده خدا من میتونم برم آب بیارم یعنی خوف دارم از افتکی اگه ای آقا با من بیاد قوت قلبه میشه چمران مردکورد از تونل خارج میشن و از یکی از خیابونهای شهر بیرون میاد منه اون نشک. ای، یادته یاد؟ میگیم آه پیاده. اینا کجا میره؟ خطرناکن، ابوالهون بنزین درمیه. نامردخ همون اونجا. ولی میای یه ذره نزدیکتر میگیم. یه آشنایی میشناسم، خوا کنه آه داشته باشه. میوان مردونه. آقای چمران. کجا رفتی؟ مرد برمیگرده و میبینه که چمران دیگه نیست. داخل یه خیابون نیروهای مهاجمین حضور دارن چمران توی خیابون راه میره مهاجمین وسیله های زندگی مردم شهر رو غارت می‌کنند. دفتر مشغول مهمات دادن به مروح هاست دفتر به سمت ماشین میره و کلتی از داخلش بر میداره و به بالای ماشین میره هموتان شاهدن که مهلتی تسلیم امده ایتر مهلت تمامه این منورش لیک می کنه و درگیری ها دوباره شروع میشه. شد ایرانیز این کادر بگیره که چشمش به چمران می که پشت ماشین نشسته نمیدان استامی قلعه سورا خمده شمرا نارنجکی در میاره تو را دست کم گرفته بودم ولی بعیده که از پشت بزنی چرا؟ من یه تو رسم جبان به جاو آوردیم ولی من سی دقیقه به شما فرصت دادم که تسلیم بشیم اینو دوار اینو دوار, دوار ما واید بکشی مقب پنپه بنزی این جای خوبی نیست یه تیر به ماشینه نگتی من اگر کشت شوام به دست دشمن موردم ولی تو چی؟ من هم سهمی که به وقتش رازیم حتی اگری سهم گله رفیقات باشه حتی اگر جفای دوست باشه یکی از نیروهای مهاجم به سمت ماشین دکتر عنایتی میاد. حتاره. ارجکان اماجان. کن. یک لحظه صبر کن. خطر خاتماته. برو دو. عنایتی شیشه ماشین رو بالا میکشه شما بفرمایید دکتر. شروع کنن. تو همان لحظه اول می‌تونی سیمرا با تیر بزنی و فرار کنی. ولی نزدی. atun حرفی داری همه قداری چی میگن؟ انایتی یک باردی که شیشه رو پایین میکشن شروب کنی به ناوی خلقی قارمان شروب نیروهای مهاجه با ارپی لیک میکنن خب دکتر من شروع کردم حالا نوبت توه بزن خلاستم چه فرقی میکنه که من شاهده ای سقوط باشم یا تو؟ شملان از این کار نگتی ترسیده چند تا گله دیگه به شیشه ماشین اصابت میکنه استفا من دو راه بیشتر نمی شاسم یا جنگ یا مذاکره خلاص هیچ برادونستون تو زن و بچه و مجروه و حتی رفقای اسیرتون گرفتارم ای دیگه بدشانسی اوناس اسیر کسایی شدن که تسلیم شدن بلد نیستن این یک پیشنهاد دارن تو زندانی های ماره آزاد کن من هم زنو بچه ها و زخمی ها رو تحتالحفظ تحویل میگیم تحت فقط در عرض چند ساعت حمله به بیمارستان پر از مجروح و هلیکوپتر امداد چه جوری باورد کنم؟ چه باور کنی چه نکنی؟ فرمان ای دیگه دسته هیچ کس نیست دکتر اینویتی همون دست چمران که داخلش نارنجک هست رو میگیره به جان گلارم قسم دخترم میگم یادت تونیش ناسیش دیدیش پقلش کردی مصطفی تو رفقا ما آزاد کن منم قول میدم نزارم یک تار موی اثر زن بچه‌ها و مجروها کم بشه آه! یک انفجار کنار ماشین نیتی رخ میده نارنجک از دست چبران میفته و انایتی به سرعت از ماشین پیاده میشه نارنجک منفجر میشه انایتی کلتش رو بیرون میاره و به سمت ماشین میاد چمران از داخل تونل به مغر برمیگرده آقا گیانه من به لب من نسیم کجا رفتی دکتور؟ چمران که کنار زخمی ها و مردم عبور میکنه. آقا نجیب شما همینجا بمون موضوع به این نرچه باش جر چمران وارد محوطه یه میشه. می از خاری یک جبه یه مهمه که آتیش گفتر خاموش میکنه. چی بود مگه از همین جام نمیشه دید آره دارن مثل مور و ملخ میشن خب بشن ما هم خدایی داریم حالا که صفل شهادت پهنه با نیست بذار از زنیم آسمون به فقط خدا کنه وقتی میرسن بالا سرمون همه هم هم هم کنار هم باشی اینجوری اکسش عشق داره چندتا از سرباز ها زخمی شدن چمران مصمت از میره از غر اش رو بر میداره و میره رو زیر زمین دور داخل <سؤال> زیر زمین میره داخل <سؤال> زیر زمین زیر همه درستی داخل زندان با بچه توی بغلش روی زمین میشینه دنیا بی شهید میشه اربي <متحن> خدای ما رو تو این امتحان شرمنده نکن عزیزم من توی این دو روز تمامه تلاش ها کردم تا صدایی این توفنگا قادشم اما نشد حالا دیگه رسیدم پشت دیوارای این خونه حقیقت اینه که اینجا دیگه هم نیست ولی یه فرار توی سردابه هست من خودم امتحانش کردم یکم سخته اما عمدیه فقط از اینجا که میریم مباده با سمت خیابون بریم قراران پرداختیم به خونه‌های مردان اشمع چرا با ما نگیرید برادراتون جدا شد میستان تا شما فرصت فرار داشته باشید اثر و نیروهاش داخل سنگرها نشسته هستند نیروها مشغول پر کردن اسلحه هاشون ش شدند مهاجمین مقر رو محاصره کردند و توانایی حرکت کردن رو از نیروهای سپاه گرفتند ما زدمین میری. تگاه خدا کنه انقدر شرف داشته باشین که ممدوم اللو ندید. دینا همین تایم ما به مرکز شیناس. مرکزیا. ما به خاطر شما شهرمون رو بگردیم اومدیم اینجا. ولی شما ما رو تنها گذاشتین. من چه جه دارم؟ صد همون فاطمه قسم جواب این خونه رو خودتون قرد بدید اصلا یه دفعه از پشت سنگر بلند میشه و با تیربار شروع به تیر میکنه نیروهای دیگه هم پشت سر اون شروع به تیر اندازی میکنه از سمت زندان مصرا می‌کرد. دادا دادا جان چراغ را. ها به وسیله بیسیم با مرکز صحبت می‌کنه. حالا دیگه دلکت هم شروع به تیر اندازی کرده یکی از میروهای سپاه تیر می‌خوره. مردم به سمت زیر زمین میران تا از طریق تونل فرار کنند دیگه نمیشون بچه ها دیرون اندوش دار باید نمیشون موزه بگیری پس خارقا چی میشه؟ مونه خودشون خوب بلده آمن جک جک پس چرا اینجایی؟ مگه نگفتم وازد ما کسی که باید پرار کنه نه نما پس چرا اینجا منطلی؟ پشت پیشواز رفیقات تو حیات منتظرتن لازم نکردم من بگی چکر کنم چکر نکنم آدم تشخیص میدم کجا باشه. با ترسیدی قهر باید همین چسیدی به زمین. اوه اوه گیره. از اینجا ما قرار. ما خلاص. خلاص. از خواب شدیم. یکی از اون که اسمش اویسه فرار میکنه و سعی میکنه از پله های زیر بالا بره و هانا به دنبالش میره و زمین میکاره. باخبره مویس چرا داشی انفجار یکی دیگه از نیروهای سپاه زخمی و خونالو به زیرزمین پرتاب میشه. خانجه. بله من ازش. هرگز این تو سردابه. همه این تو سردابه اونجا هم تره. مهاجمین یه نارنجک داخل زیرزمین میندازن و بعدم خودشون وارد میشن. علی رضا. بیا. علی رضا. آرب. بابا. تو را شم را سعی میکنه با وسیله های داخل زیر زمین سنگر بسازه تو تا از به همراه به هنوز داخل زندان نشستم یه پیر مرد تیر خورده و زخمی از تونل به سمت زیر زمین پرت میشه تمران و نادر و دو نفر دیگه سنگری جلوی سردابه درست گردن آماده شلیک هستن مردم و زخمی ها داخل سرداب نشستن حالا میون زخمی داخل سردابه نشسته و زیر لب قرآن میخونه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم الله الرحمن و یاک انتظار میکشند صدای تیراندازی ها کم کم آروم میشه صدای یه رادیو تو دست زخمی به همراه سید وارد زیر زمین میشه. لعنت به شیطان. تلس میخوان گولمون بزنن. چرا باید گولمون بزنن؟ ما که کلی از ها رو شهید کرد. آنه صدای بچه های ماست شما همین صدای رو می شفید؟ چلکه حقه هست چرا الله اکبر می میخوان ما رو بکشم دیرون نگو. دکتر کجاست؟ هنی جامسه چطور؟ رفتند چه؟ رفتند؟ فرار کردند. چرا؟ چرا؟ از کار رادیو روبه آلمی کرده. چطور خمینی از شابلون ات کرده؟ از رادیو زنفش کردم بسم الله الرحمن الرحیم. از عصر ایران. گروه مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و قائل را ختم کنند. من از آنان تشکر می کنم و به دولت و ارتش و جاندارمری اختار می کنم. اگر با توبها و ها و قبای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود من همه را مسئول می دانم. من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور میدهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگان های ارتش و ژاندارمری دستور میدهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنند و به دولت دستور میدهم و سایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند تا دستور ثانوی من مسئول این کشتار وحشیانه را قبای انتظامی می دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می‌کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام ندادند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مصبف انجام نگیرد سران ارتش و جاندارمری را مسئول می‌دانم. و سلام روح الله الموسوی خمینی، 24 شهر رمضان 99 27 مرداد 58 هوا روشن شده مردم زخمی ها و نیروهای سپاه از زیر زمین خارج می شن شمران گریش میگیره و از هر مده ها خوش مردم از مغر خارج میشن و به سمت خیابون میرن چند تا از بچه ها بمونن بقیه با من میریم سراغ مهمونهایی تازه نفس بیشن بچه ها را بنداشم بابی تو با من بیا یه میبخ نداریم باید کم شد را بیفتا بود تو بمون باسته باون باشه عجر کامیس میریم سمت میدون هلی هلی. چمران کنار ماشین فولکسی که منفجر شده میاد و دوباره خاطرات خانوادهاش در لبنان براش تدایی میشه همسر و فرزندانش رو به یاد میاره که داخل ماشین نشستن همسرش عشق میریزه و چمران فرزندانش رو در آغوش میگیره و گریه میکنه. شمران داخل ماشین نشسته و دوربین رو از جلوی چشمش کنار میبره و فیلم رو از توی دوربین در میاره نوارهای فیلم رو با ناراحتی از داخل فیلم بیرون میکشه و فیلم رو روی سندلی پرت میکنه ماشین شمران داخل جاده کنار ساحل حرکت میکنه و محف میشه رادیو فیلم چه با تلاش این عزیزان تقدیم شما شد. کارگردان فرشاد آزرنیا صدا بردار علی حاجی نوروزی تنظیم برای رادیو و رابی آرمان قفاریان تا رادیو فیلم دیگر خدا نگهدار